الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآل الطيبين الطاهرين العصون اللهم فضلك على هذه المجمعين اللهم اغفر لنا جميعا الشهرين برحمةك يا رحمان الرحيم أسرم خلنا عن بعد اطلاق عدل احکام نصفت به علم و جهر و آیا اطلاق داره یا نداره و نتیجه تا یا نتیجه تا اطلاق اصلاح اطلاق اصفات بکنه این صحبت گذرد و تقریب کلمات محوم مستار و استاد و استادشون محومی نایین بیر این بقیه کلمات تقریبا با همین ترکیب حل میشه که صحبت داره ما از کردیم دیروز که به نظر ما اصلا ترک مسئله جلو دیگری است به این مسئله علم و جهل و اطلاق و تبدیل اینها برمینید برای توضیح مطلعا از کردیم که ما اون چیزی که از شریعت مقدسه از مجموعی آزات و بگاید و سیره په امر اکن دست میاد اون که بسورت در این شریعت مقدسه سنک جل و سنک تشریف در واقعش دو سنکه این مقدار به عنوان ما الله فی کتابه هی. که پرازه اللهی سری و عنوان هم به و سابرا هم توضیح دادیم که حیقت سنت در واجبات یک نحوه در محرمان به نحوه دیگریه مجموعا سه نحوه هستی شد که چون بیدیم تکرار بکنیم سابرا متعرض شد و هیه نکته دیگری که از غیر از نحوه اونها رابطه بین سنت و فریضه و عرض شد که از مجموعه ادله اینطور معلوم میشه که احوامر سنت ولو جعلش به جلال رسول الله واقع شده اما به نحوی نیست که مستقل از فریضه باشه استقلال نداره عوامر فریضه اطلاق داره اما عوامر سنت اینجور نیست همون تشریح رو از که از که مثلا اگر هم خارجی بکنیم فریضه از قبیل این چهار بیواری و سخت و اتاقیست که ذاتا درست میشه و سنن از قبیل سپیتکاری یا برگ یا رنگ کردن یا پرد آبیشتن از این قبیل سنت اینجوری سنت دودایی از فرائل همهش ثابت نمیشه اما فرایت چرا؟ پس من کسی این با مثال تازه وارد اسلام شد ذکر رکوع و سجود و قرارت اینها نبود خود همون رکوع و سجود که انجام بده کافیه اون ثابت میشه اما اگه فقط ذکر رکوع و سجود رو بلند بود و بخواد رکوع و سجود انجام نده نه همون رسط خلافی سابت نمیشه همون رسط هم ثابت نمیشه این توضیحاتی بود که صابران گفتیم که نحوه کیفیت جنگ در سنن به چه شکلیه و سقوط احوامه اونها به چه شکلی از مواحط دیگری که منحکتون مجموع از مجموعه روایات و مجموعه روایات و مجموعه ادهی از موارد تفصیح هایی این که ادهی میگمتون بعضی سالش رو نمیاد اینه که یه رابطه خاصی موقعین سنن و فرارت هست که صرف اون رابطه فرائض تغییر به پیدا می کنن. اما این تغییر باز مطلق نیست یعنی این تغییر میشه شه باشه با حالات خاص نه اینکه که مطلق باشه اون تغییر مطلق نیست حالا با چند تا مثال شما این شما مطلب واضح می و لذا با اینکه که پیدا می باز هم اصلاح فرایض با حال خودش محفوظه اینه یک این نقطه بسیار لطیف و ذریفیه چرا؟ چون میسید از ذهنیت از آن اصولی ما هستم این کتب اصولی ما و بزرگان اصول اگر یک مطلق تغییر خورد یا خب مطلقا تغییر کرده، اینطور نیست که با حالاتی دونه حالتی باشه و اگر تغییر کرد، مخصوصا نصف به المجان میگن در احکام تأثیر نداره این تقیید در همه حالات هست اینجور نیست که نباشه حالا که آید موامنا کن در برداره حالات انسان قوض داشته باشه اما تقیید برقرار مثلا در باب مثال بزن تا روشن بشه در باب مسافر یا مریض آیه اونگاه داره که من کار مریض او علا سفر فعدتون من ایام اخر این کسی که مسافره یا مریضه قضا بکنه خوده قضا بکنه این ازتون من ایام اخر اطلاق داره که میخواد در سفر باشه در ازتون شو اطلاق داره فهمه برای قضا اما از سنت پیغمبر نه اصول من بر از سیام و سفر در روایات را سحن این اطلاق گتاری تهیید خورده که مثلا اگه میخواد قضا بکنه باید مسافر نباشه باشه خوده بخ بنای احکام ما اینجوریه. می این میگن حالا که اصلاح کتاب تغییر خورده این تغییر دائمه هست اینطور نیست که خالی باشه نباشه بالاخره اون مصلح تغییر می‌خواد یا نمی‌کنه چند دوستا اگر تغییر خود مطلقاً هست تغییر نکر مطلقاً هست اینجوریه یکی فقط این اطلاق رو ما تغییر نذاریم که ذاتاً من ایام الاخر رو به اطلاق رد کنیم چه بیراهی چون چه عالم بمیشه اطلاق برد اگر تغییر زدنی این ازتون من ایامون اخرن فی غیر صفح فی حال الحذر این هم میکنه بکنه عالم باشه چایز باشی یه چیه یا اطلاق تقیید میخوره یا تقیید نمیخوره یکی از این دوستا بیشتر نیستی اگر تقیید کرد در علموجه هم تأثیر نداره تقیید هم نخول تأثیر نداره این خلاصه ای اون ذهنیتی که الان هست سعای خوی نایمی بزرگان اما اونی که از روایات مجموعه روایت معلوم میشه که نه این یک نوع به اصطلاح اینوزی حالت این اطاف قدیری داره یعنی این تغییر مطلق نیست این تغییر در حالات عادیه اما در حالات عضو تغییر نیست اطلاح هموند با حالش محفوظه این یک ترک جدیدی اصطلاح درست بیاره مجرم نداره یعنی اگر دی متعارض نیست در غزاره ما در غزاره اهل سنه متعارض نیست نه در غزاره ما این یک طرح جدیدیه اصلا بحث علم و جنو اطلاق و تقیید در این بحثا نیست اطلاق و جهل این یک طرح جدیدی فرق این در کو به اول مقدمه روشن بشه شما اگر اطلاق فریضه ای داشتید غیر و تغییر از سنت این اینطور نیست که دائما تغییر شده در حالات خیر و عذر تغییر میزنه در حالات عذر نمیزنه اطلاق با حال خودش محضیزه این متعارض نیست این صح متعارضه لکن اگر این صاحب بشه خب دیدن مثلا باب راعز میخوره و اصول راعز میخوره كل کف یه بحث فکری داریم که آیا روزه شروع یا نه در حال سفر یه بحث اصولی و تحریف اصولی داریم این یه تحلیلی اصولی خاصیه خلاصه این تندوسی ان شاءالله براتون واضح شد این یک برداشت خاصی از شریعت و از سنخ قانونگذاری در این شریعت مقدسه با یه ذهنیت که الان در اصول داریم میکنه خلاصه این ذهنیت اینه که اطلاق فریضه یک خسلتی داره در این شریعت که به سنت دائمان تغییر پیدا نمی کنه بله اطلاق فریضه به تغییر فریضه دائمان تغییر پیدا نمی اما اطلاق فریضه به مغیدات سنت دائما تغییر فیدا نمی در حالات غیر عوض در حالات عادی تغییر پیدا نمی کنه. اما اگر عوض آمد اسلام با حال خودش محضوزه این در حقیقت مثلا اینا نخواستن بگن چطور شد در حال جدیدی مرمون نایمی چرا راید صحبت این بود که اینا چرا ببین برای اینکه این مواردی که مثل قصر و تمام یا مثل صوم در سفره در حالت جرح این رو ما سی و اصولی درست رو ما معتقدیم با اون قواعدی که اینا گفتن جو در نمیاد تو میشه نمیشه اما اونی که الان ما از مجموعه یه میفهمیم و تطبیق با موارد و در حقیقت اینه حالا تذکیرش بکنیم مثلا من کارم من کن حالا سفر فعل دستو من ایام آخرین اسلام ناره چه لفت سفر باشه باشونه از اون را فیغمبر را من فیغمبر رکن فرمون الله اسم از سیام و سفر این تغییر میزنه فرس با یه بر شیعن برهم اینه که قضا سوم ماه رمضان باید در سفر نباشه در حضر باشه فرس اونی که در کلمات فوقها آمده اینجوریه این تقیید رو مطلق گرفتن و بخصیم روایت آماد تعبود که اگر جاهل بود درسته خوب دقیق بکنه جاهل بوقت بود در سفر ازاکر درسته اینا را همه رو حالت تعبودی گرفتن تحقیقی که ما این اینه نه نیست اون فیضت رو ایام نوخی اطلاق داده چه سفر؟ چه هزن سنت پیغمبر آمد لیست من در غرعتیام و سفر و هری صلات و عاد رو هم اینها اینجور معنا نگردن این حدیث الله نماز به حدیث صلات و عاد قاعده لا صلاة لا صلاة و إلا من خمس این زئی نماز اینطوری صلاة و صلی الله علیه و به حساب رکوع و سجود و طهور و وقت و یاما است ورقراعت و سنه ورکشف و سنه یا ورکسیم و سنه و لا تنقض از سنت و الفریضه. این لا تنقض از سنت و به ذهن ما اینه که چون حالت لاس و آب عذریه یعنی در حالات عذری سنت میتونه فریزه رو نقضی بکنه این فریضه رو نعبید بکنه این اینجور فهمیدن یعنی فریضه اگر انجام داده شد به اخلالی به سنت شد در حالات عضر عمل درست ما بردیمش بالا ازش یه قاعده اصولی رو بردیم اصلا سنت که میاد تقیید فریضه رو میزنه در حالات عادی این تقیید در حالات عوض تقیید بمیزنه در حالات عوض پس ما عمر داشتیم فعیدتون این ایام اخر یه اطلاق داره تغییر آمد که در سفر نباشه فکر در حال عادی اگر محتلق مثلا نسیان چیزی اما اگر حکم رو بلد نیست مثلا سنی بوده تازه شیعه شدیم زیر شیعه در معذوره این حکم جهلی که معذوره در اینجا به اطلاق فعیدتون من ایام اخر تمثلت میکنم امر از اینجا میکنیم چون باید ما از نظر قائدش اینطوره، طوره عبادت و بدون عمرش نیکنه تسکیف بکنه بگیم حالا که خیلی تحلیل جدیدیه حالا که عوض رو پیدا شد دیگه لا تنخست لا تنخست یعنی اطلاق تر... به اطلاق فریضه با حال خودش محفوظه برگردیم به اطلاق فریضه من ایام آخر. به همون اطلاق برگردی. پس دقت قرصه پس این کل در اون من در مواقع اطلاق و تغییر مواقع بشه بسید هست یه اشاراتی کردم این روزه که این توضیح ما بیشتر شد یه اشاراتی کردیم که اینها اصلا خیلی از مواقع تغییر تغییر اصطلاحی نیست مراد ما این بود یعنی به حضر ظاهر آقایان مثلا میگن وقتی تغییر خوب دیگه فرمان بکنه آلم با جا جایز باشه اوضو داشتی واجه نداشت مثال مثلا فقطقر او ماط است از نماران بنابرا اینکه هم میشه با همداری اما خب خلاف زارارت و در هم که در رائتی در نماز صح شده فر ماط است ص آن صلاس است. خب این اصللاق داریم جر اش خاصن و نه ت و لا خواف اینم این هم اصللاق داده نماز جهر درست شد سنت د ق در که هوا بود بر جهر اگر وقت حواروشنی فعلا بر اخفا کردن این سنت رو حالا بحث اینه که این سنت رو بلد نبود یا فراموش کرد نسیان برش دست رد. یا اشتباه کرد یه جایی نسیان تاریخ بود سالی که نماز خیال کرد که مثلا به اصطلاح یا فراموش که شب شده مثلا خیال کنه مثلا نماز دیگه‌ایه حواسش پرته مثلا حواسش نبود به نماز مغرب و عشا و اینا حواسش هم نه که به وقت نماز نمازشم خون درستم بود تو وقتم بود حواسی جای دیگه بود بلند بود قفلتن بلند بود کوتاه خون مثلا اخبازم خون نمازم اینجا این ترگیر اینو میگه میگه اون روایتی که آمده گفت اون آیه اینواره که فقره اون ما تأثنه قرآن که اطلاق داشت تغییر خود به سنت پیغمبر به فعل پیغمبر یا به سنت قولی یا به تغییر اما تغییر پ یک شکلی دیگری پیش اهل سنت این که ایشینگی فعلت و قولت و تفریح. پیش اهل سنت چون قیلی ها داره و اونا باید موارد داره چون جبهر یک موارده مثلا اهل سنت مثلا کنانفعل و لالکه یا عهد نبی یا کان رسول الله مثلا یفع کن... این بحث تقریر اینه به اصطلاحش میگن اگر صحابی گفت کنانفعل این تقریره شما این واض نیست تو این درجه ای که اونا دارن جور دیگه زاره بر آن تبدیل اساساً درسته اما شکل خارجیش و شکل تح خارجیش یه مقدار فر دا که من کهیم خوخواالیم بررز بشن. با سنت آم که پیغمبر اکرم نماز ظهر رو خوندن خوونن مقرقهشه آره چیزی نمیدونست نمیدونن چیکار میکن ؟ اطلاق میگیریم اطلاق فقره او ما اونجا اطلااق زندگی میششه. نایین آمد این رو توجیح لگر اون به نتیجه سر تقیید زد به جهل و علم و اینها آجه خوبی به اصلاح اصلا اون نیست اصلاً بحث سر تقیید و نتیجه و تقیید نیست بحث سر سنخ جهره سنخ تشریه مثلا پیغمه راکن را در قصد جنابت یا قصد اول سرگردن میشستن بعد بقیه بدن یا دسترات و دست چهر اما ما در کتاب کریم این اطلاق داریم ولا جنوبن الا عابري حتی حتى تختسلوا من املاي ايرو خوندن امكنتون فتح تطهرو چون اهل سنت فقره بگیریم اونم به این معنا گرفتن که ما وضو در واسه تونا میدونیم اون اون رو به معنی غرزا با وضو ميتونن اونا همه احسال جنابت با وضو است حالا من در اینکه اون بحث ديگه با اهل جنوبن الا حتی تخته سلوی که داره توش نداره که سرگردن اول باشه دستراز اول باشه این اطلاق تغییرش سنت پیغمبر که اول سرگردن باشه حالا اکیسی جاهل بود تا از بارد تکلیم شده همه بلند نبوده جاهل محضوع اول دستراز و چپ شده اول دستر چپ شده در حالات جمع الان در پتاباشون این طوره که این باطله چرا؟ چون این عدلی سنت رو تقرید مطلق گرفتن برای فریزه اما اگر ما این راه آمدیم بگیم اگر شخص فرس آمد و مخالفت با سنت کرد لیکن خود فریزه محفوظه تختصه بود یک تصویر لاتن خود سنت الفریزه معناش اینه که اگر شما فریزه رو انجام دادید اون عمل درسته خب این ظاهره اما تحلیل و اصولیش به این ترکیه کنید اگر شما اطلاق فریضه داشتیم و تغییر از صندوق داشتیم از این اصلا نحوه کار رو عرض میکنه اصلا سنت دیگری میکنه اگر جهل و عضوی از انها دیگه مثل نسیان و قفلت و فراموشی و اینها باشه اون وقت در اینجا اون اطلاق فریضه دو ما محکم میشه برمیگرم به اطلاق فریضه بله اگر فریزه به خود فریزه تبدیل بخوره دیگه به اطلاق فریزه بر نمیگردیم این فرق بین فریزه و سنت یه فرق دیگه ذکر کردن که یکم توی مسئله روشن تر یه فرقی هست که اگر کسی در ماه رمضان با اینکه میدونه ماه رمضان امرا نیت مثلا قضا کنه از ماه رمضان قبلی یا نذر داشته نیر نذر بکنه یا نیت کفاره داشته با اون کفاره بگیره خب مشهور بین فقهای ما است که این روزه باسه نه با عنوان محرمزان واقع میشه چون نیت محرمزان نکرده با عنوان نظر و کفاره و غذا هم واقع نمیشه میگن چون خلالیت داره من اون استاد خویی میفرمان که اشتال نداره این توی بحثه علم من هاشی آرویشون توزه نمیسلم ازوار ترکتق میگن ایشون تکلیف داشته به روزه محرمزان تکلیف به غذا هم که داشته البته بالا اولا این روز رو به عنوان حالا اسیان کرد. بوان وانا قاعده تکو با ادی با دي چرا فقطو مثلا مثلا معرب ترسو که وظیفه داشت ازاله نجاست بکن نکرد نماز خون اسیان اهم کرد امر مهم فعلی میشه تقریبا برمون ناویلی به خود ایشان و بعد از صحیح شدن امر مهم اگر انجام داد اون نماز درسته البته ما متفصل بحث که ترسو بنایی مشکل داره یعنی به حال اون بحثی که اینجا نیست. گفتم که این خطا مال یعنی که اصلا اصلش از منظور جامعه است ما کراکیز که آمده نا بحث بحثه پلانی داشتگاه رو من نمخواب واده باشه خب این سوال، آیا این تقریب رو میشه درست کدر باید خود این سوال اینه بگی ما در اینجا اسیان امر اهم کردیم و امر به مهم در این صورت خیلی میشه از امر حضا اطلاق ادتون من ایام من اخر. این اطلاق رو دیگه شما تو این ماه همزان مسافر بودین یا مرز بودین ادتون من ایام آخر، این ایام آخر شامل میشه ماه همزان بعدی رو چه فهم میکنم؟ اطلاق به اطلاقش داری پس امر داریم, اطلاق داریم. امر اطلاق داره. میتونیم به این امر ادتون من ایام آخر روزه خضا بگیریم تو ماه همزان بعدی این جواب جوابی مطلب فکر میکنم بگر الان روشن شد اون سرش اینه درس داره درای مبارکه این قبول داری اصلا عدلش هم اخلاق داره چون آیه مبارکه در باب روزه سه تا آیه که پشت سر همه یه ترتیبی داره کتو علیکم الصیام اول ببینیم ترتیبه کتو علیکم الصیام که ما کتب علی من قبل کرد اجمالا اصل جعل تشریع روزه بعد ایاماً منظور آیه بعدی ببین لوه بعد از اون شهر رمضان این آیه سومه اللذی و اونزه لفیه <بقرآن> بعد می کنم فمن شهده منکمو شهر فریاسمو دقیق کردیم فمن شهده منکمو شهر فریاسم اینجا بحثی, بحثی بحث داره که امکان منکان مریض هست این از تکرار شده او علا سفر فعضتون من ایام اخر این اطلاع داره درسته جب این بحثش نیست اما بحثی این هست که سوم خود معرمزان در خود قرآن مقید به صوم شده یعنی این ایام مددادی که اول بود کتب علیکم و سیامی که اول بود اطلاق بود لکن این اطلاق مقید شد در خود قرآن به شهر حمضان چون داره فقرمن من کمو شهره ده فلیه سوم بود این معناش این است. اون سومی که در اول گفتی شده بود کتب علیکم و سیام من معدوداتی که بعد گفته شده بود اینها مغیق شدن به ماه رمضان دیگه اصلاح ندارن اون کتب علیکم سیام در ماه رمضان و رضا در روایات همون از پیغمبر نسخه سوم و شهر رمضان کل سوم قبله دیگه اون کتب علیکمون سیامی کامد هیچ روزه واجبی رو نگذاشت همه رو برداشت منحصر کرد در ماه رمضان پس اینجا خود کتاب خود فریضه تغییر خورده به خود کتاب. و اگر تغییر خورد به خود کتاب شهر رمضان همان شهادت منقوم شهرت علیه دیگه نمی‌تونیم به اطلاق عده من ایام الاخر نساز به شهر رمضان توسف چون رابطه فریضه با فریضه اینطور طور نیست. رابطه سنت با فریضه این یک تره جدیدیه یه اصلا بحثی به این بحث اطلاق و تقیید حتی بحث تر از معروف که اهم و مهم اصلا معروف نایمی و دیگران یا آرکوی اصلا بحث بردن رو اهم و مهم معروف شد از این مطلب که از اهم و مهم باید نقطه دیگری نگاه کرد اگر اهم ما فریضه است نیمتونیم با حسیان فریضه سنت را انجام بدیم این دو تا مشکل اینه یعنی اگر ما دخلی اسیان فریضه بکنیم بعد بگیم امر مهم و انجام بدیم این نمیشه اصلا نمیشه اصلا امرش نمیاد سلندت کنم اونم با سلوانم درست نمیشه جان نمیشه دوران هم به بین پریزه و سنت و دید سنتی دید سنتی دید سنتی و و خب میزدن رو ننوشتن اصلا بحث اهم و مهم نیست اون حالا احراز اهمیت بکنیم هرچی که در آن به عنوان پرائز آمده اگر که در مقابل سنت قرار گرفت اون سنت رو نمیشه انجام بدیم یعنی اون امر بس... مش مهم بشی از کلمه چون بحث هم بحث استیاب وقت نه نه بحث استیاب نبود ببینید اصلا من اول بحثم تشکیل میشه اول بحث است کردم از خصایص امر سنت و فریضه اینه که نه اول بحث است اصلا امر سنت به تنهایی ثابت نمیشه اما امر فریضه به تنهایی ثابت میشه سنت ولو امر داره اما امرش مونده که در امر فریضه است مثال ایلی خارجی هم دادم مثل این سفید کردن دیوار این سفید کردن دیوار بعد از وجود دیواره میشه دیواری باشه بدون رنگ اما رنگی بدون دیوار نذری یعنی طبیعت سنت ظفر جایمی هم که از همینطوره خام نه, نه مثلا اگر ترشیه مثلا قصر جنابت ندارد در اونجا تکلیف به قصر جنابت داشت انجام نداد قصر بحث مثلا انجام داد ترشیه اونجا هم واقع نمیشه شه با ترتب درستی یا قصر میگه یا اون قصر میگه چون همون رو که هایکاتی یک کارش باشه الا دیگه اگر عنوان قص باشه واقع نمیشه امر او واقع نمیشه باسیان امر اهم باسیان فریضه نه فریضه واقع میشه نه سنت طبیعت سنت در این شریعت مقدسه یه طبیعت خاصیه یکی از کارهاش اینه که سنت نمیتونه فریضه رو تغییر دائمی بزنه تقییدش هم محدوده به حالات طبیعی در حالات قض باز اطلاق فریضه و حالش محدوده مثلا فعید من ایام آخر که مثال زدن این اطلاق داره چه در سفر باشه خضاعش چه در سفر باشه در حضاعش فهمان میکنه کفاری فسیام و, و شهرین متطابعی که در قرآن هست که کفاره هست این هم داره شهرین متطابعی در سفر باشه این این به سنت تقیید کن من حالا اگه کسی جاهل بود بخصر اینه روایات داره که روزش درسته جاهل بود در سفر قضا کرد آقایان ما یه تعبد گرفتن چرا نقطه از. چون یعنی اون دلیل آمد تقریف کرد تقریف فرق بین علم و جهر که نداره که پس سعدتون من ایام اخر مغیل است به غیر قفر. و اخو روایت آمد که در حال سفر روزه درسته خب میگن اینجا تا عبده ما دیگه این کاری کردیم با این بحث رسولی تعبد رو برداشتیم گفتیم قائده نیست تعبد نیست اون قائدش دیگه از این قوائدیست که تو اصول ما نوشته شده یا اصول اهل سنت اون قائدش اینه که عدله سنت الان به تقدیر منون من انده و تقید. این به دریم دیگه آمد که عدله سنت تو بقی از اطلاقات فریزه رو دائما تایید نمیزنه در حالات عضر اطلاقات فریزه با حال خودش معضوزه فریزه توسط مجموعه روا در فریزه مجموعه که صفات عملیه که نماز و درسته این میثاق و لذا اون موارث اطلاقات تعیینم باید بشه ترتبات... یعنی این بحث اصولیه و اگر به جایی درسه همه شنه همه خیلی دیگه به هم تعارض تا آرز بین سنت و وقت این هم که در روایات ما داره که مثلا روایت باید شواهد از کتاب داشته باشه مراد اینه شواهد کتاب و سنت اینه مثلا اگر روایت آمد که قضا ماه در سفر درسته این با شواهد کتابی مخالف نیست در حال جمع اما اگر روایت که خود ماه رمزان در حال جمع درسته این با شواهد کتاب نمیسازه چرا؟ چون در خود قرآن ظاهرش اینه که برای انسان مسافر اصلا امر به نیست اطلاقی نیست از همون اول وزیفه اش خداست چهاره نیست مگر اینکه این بباید هم اینجور بگیم بگیم در این مورد خصوص دقیقه خیلی موادث لطیفید در این مورد خصوص اطلاق تقیید کتابی به خود اطلاق کتابی هر دو کتابیه چون از کن سه تا هم. آیه اول کتب علیکم و سیاب این اطلاق داره آیه دوم من معدودات این هم اطلاق داره آیه سوم بوم شهر و عملان امن شهده بینکم و شهر حالیتونه این خیلی داره این تو آیه سوم بوم و من کانم اینکم مریزنا او علاسکار فجده سوم به نیومن آخه این شیش شد. پس یهی ادلاح داریم که تو الکم صیام ادلاح فریزه. یه کلیه هم داریم. و من کانم اینکم مریزنا او علاسکار فجده سوم به نیوم. وقتی این دل مراد اینه. از باشی که این خلاف بازارهشون ادلاحات. کتاب به خود تقییدات کتاب تقیید واقعی پیدا میکنند نه محدود بگیم اینجا اگر کسی جاهل بود و ماه در در سفرگیر سریعه داره و فتوای از هم هست روزش نوسته میخوام بگن در اینجا ما با اینکه که از کتابه به اطلاق کتاب برگشتیم کتاب علیه موسیان در این تنبا شده چون از کتابه ما اعتقاض داریم که روایات رو میتوانیم طبق قباره چون خود احمام علیه السلام تمنیم این نماهیه و اصول و علمه نره سحاق آگر انکابر روایات و احکام رو اصولی معنا کنیم نه تعبدی و موردی پس میتونیم خیلی راحت این نتیجه گیری بکنیم مثلا اطلاقاتی سیاب و شهرین مصابی در قرآن هست پیغمبر همون کتکاره و غیر کتکاره در کفر نمیدیم کسی جاهل بود نمیدونست کپ در سفر نمیشه سفر هم دو ماه هم در سفر دو سه ماه هم گرفت رو جاهل بود روایت میخواد اشفر لنده روزه شروسه اگه جاهلن انجام دار روزه شروسه طبق این تطوری که ما خیلی لوچن شد دیگه سنتیش اطلاع نداره سنت طبیعتش این طوره. چون سنت در واجبات مکمل فریده صفت سنت بهر تکمیل و محصل غریزه مجلل جمال میده خودشون نیستن چیزی مست در محرمات اینطور نیست مثلا صبوره توجیه رو بی سوجی حدا در محرمات الهییه مثلا در روایات داره که خداوند متعال خمره که حرام کرده این شراب انگوریه پیغمبر اکرم به سنت خودشون هر مصیری رو حرام کرده این سنت یه ما بین واجبات و محرمات در معنای سنت تعریف کردیم مثلا خداوند ربای رو که حرام کرد ربای قرض یا به قول خودشون ربای نسیه یا ربای قرض مثل اینکه انسان بگه تا هم بده بعد دو ماه 120 تومان بگیره این ربایی که در قرآن حرامه پیامبر اکرم به سنت خودشون فرمودن نقدی هم اگر تفاضل در خصوص مکیل و موزون خوب دقت بکنید و در غیر مکیل و ربای نیست روای نقدی محدود است به مکیل چون این سنت پیغم داره تخم توخمان در اون وقت محدود بوده ست توخمان بوده به 120 توخمان نقلن اشکال داره نفیتا اشکال داره چون روای نفیه مطرقا حرامه اشتباه اما روای نقل و لذا این که شما جیمی مثلا از مزرگان ما گفتن شما ست هم هم به 120 نقدن اشکال نداره اما با نصیح اشاره اون نکتهش همینه چون اگر صد هم داریم که بعد از یک ماه سال 20 ربای نسیه است ربای نسیه مطلقا حلاله این به کتاب حرامه. اما ربای که نقدی بدین ببین آقا صد این سال 20 این به شانه پیغمبره بعد میگن پول جزء محدوده اشارهش که اسکان جزء معدوده چون ربای نقد سنت به الحاق شده ربای قرآنی در محرمات یه جوره در واجبا جور دیگریه یعنی فقط تو نه محرمات جوری دیگه‌ند نحوه دیگه‌ست دقیق کردیم مثلا همین بحث معروف که زکات فیغم کردن و و رو پیغمبر اکرم در نه چیز و عفا اما خب الان بحث کردن که با شرایط جهانی ما، روزگار ما، اون نوکتی چون اون ناچی صدایش که حیوانات این که خب غالب من در زندگی شهری و مقطری شوتو گاوه اینو که زندگی شهری و متراکم باشه، دوستان به سختی به گاوه شد ما رو خون چه سختی مذهبی به بشه تو جای درست پلیس تو که تو زندگی ما این حرف مطرح نیست. اون خلادات هم که با این معنی که نداره، در دیار هم باشه، عشق الله فقط برای زندگی که شایسته حدیاشو محدودیتی نداره ولابد که باز اون حیوانا هم باید شایمه باشند و معذوره نباشن دل אחרי خب این معناش تقریبا موعدی میشه به اخلاق زکات دیگه در نوع چی باشه حتماً برای این است که فقط در این نوع چیزه حالا ما اونجا خصوصی از که اینا کنیم در روایات اگر دقت بشیم که ان الله اضر از آدم زکات و سن ها رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله از الزکات و سنى رسول الله في ست اشیا ما اینجوری اینجوری نمیگیم که اگر سنت بود در بخش سنت دست حاکم باز باشه بتونه زکاتو داخل دیگه هم قرار بده سنت جعل سنت رسول الله چیزه من انگلیسی عادیشو بگم سنى رسول الله في ست اشیا درست میگه اما دست حاکم باز بده نه فقط گفتیم احرات است که در اون جوه های سوچه مالیات بذارن این نیامده آمده دیگه که پیهم برای اکرام تفسیر کرد آیه رو به نهی اون اطلاق فریزه با حال خودش محبوظ میده جامعه احتیاج به جه داره به پول داره البته از کردم من کردم در بحث زکات هم از کردم یه بحثه هست که این مؤسسه کافی نیست چه نیچه ماطور آمار ندایی مشکل ما اینه ان جه خبر خدای رو زیاد میکنیم. اون باید در جامعه آمار پیاده بشه اون حدود شریعت با تمام و حدود شریعت. اگه مشکل پیدا کرد اون وقت در اسلام دیگه این مشکل جامعه های ما عدم اعتماد روی این آمارهایی که اعلام میشه به هر حال اگر دقت بکنید ولذا در روایات مثلا در یه روایت داره که لیس ما حرم ها نبی مثل ما حرم الله. این اشاره به تفریق ما بین این دوتاست اونجا آثارش تنخ دیگریه مثلا آثار اونجا است که مثلا گرگ رو به ما ها نبی چون جزء سباره اما خندیر رو میت رو به می ما حرم الله. دیگه ما خرید و جایز نیست الهار مالیگر شده اما خرید و خروش گرگ اشتال نداره یعنی اون آثاری که در باب میت آمد در باب فریضه آمد می تمام آثار رو سنت بار بکنیم ما اصولا به این نسل که شریعت مقدسه داره دو سنخ جهره یه سنخ جهره به عنوان فریضه البته این حکمت که اگر دقت بکنیم عمده اختلافات مسلمین هم در فرائز نیست در سننه هم. مثلا عمده اختلافات اون نکات فرامانی داره مثلا فریضه تقریبا در حالت است که تقریبا یقین آوره که درش هم قالبان تقریب نیست مثل خود نماز و عدد نماز و درکت در اول نماز در روایات داره که درکت اول نماز من ما فرزه الله اون درکت اخیر یا یکیت از ثبت مغرب به ما سن نهان نبی بعد امام می کنوند لیت از سهر و فری ما فرزه الله در ما سن نبیه یعنی برپرز اگه شما داره که اشیر رو سر کردیم کم و زیاد کردیم مهم نیست چون در حالات و عذره اون ماسن نهان نبیه البته خوب دقیق کنیم ماسن نهان نبیه امرش استقلالی نیست شما به جای نماز زب فقط سرکت سه و چارون شده کنیم پایده نداره طبیعت اون نماز اینجوریه اما امر فریده یک طبیعتی داره خوب دقیق شد در مثلا امر فریده یک طبیعتی داره که در حالات خود اطلاقش خودش می‌مانه. مشکل اطلاقی نداره پس اون رواهات مثلا در رواهات ما داره سن رسول الله مثلا القراءة سنة سنن سن نبی و کلا بله در همین رواهات خضر نیست داره که کانت سلاب رکعته این فضا در رسول الله فسارت سنة و عدیل الفریضه ببینید تعبیر خیلی خیلطی سنة عدیل و هندوش فریضه شد یعنی همچون که امسال نمیشه اخلاله به فریضه کرد اخلاله به سنت کرد اگر این تفسیر روشن بشه این خیلی کارگشا میشه اون نواحی که دیروز گفتم که آدم پیش به خب اینا که همراه پیغمبر در حج بودن تراژ و انجام دادن تقدیم و تحقیق میگه من اول حرف کردم میگه من اول رحم کردم فیکو زلال قبول رسول الله بسلا و بسلا است اساسات شریعه این داره رو نقطه پنیش همین فرایض سنن بوده. اکثر سنن یک مشکلی داره یعنی مشکلی در ترابوز این بحث سنن مدون بشه مستندلا و فروه خیلی کارگوشاست برای حتی تقریبا ما بین مذاهب اسلامی ولی شما اگه راحت هستین با هر سنت سرغشت بکنیم چون در این صورت دقیقاً تشریف داده میشه نقطه اختلاف کجاست مثلا رکوع و سجود جزء فرایض فرق او از اما ذکر روکو و سجود نه حالا مثلا فرصم در همین روکو و سجود اگر گفتی ذکر رو و سجود درست نماز شد. اما اصلا روکو انجام نمازش باته این طبیعت بسرسلن و فراید اینطور پس این, این مطلبی رو که مقوم ناینی در اینجا مطلب فرمودن استاد مطلب فرمودن یکی به مقام جل زد نسیر تقییدی که مقام اطلاق عدل لذب و این که این در مقام امتثال اصلا این نیست حالا من یه بگم بخوا شما در اصلا این نیست زمین بحث کلا این نیست اصلا کل بحث زاویه دیگریه اون موارد جه به استثناء روزه محرم زن در طرف کلا روز شاد ببین شما تمام اون ادله ولی اون فنزوران و سوران از نزول در دلای حج حالا به اطلاع شما ما کامل نظر نداد لا در این بریبونوزو رو نزد کرده اشتشنبه روزی برخته سفر ندونسته که در سفر نمیش روزی در سفر, سفر گیری در رواز در که جهنم بود درسته خیلیت بکنی چرا؟ چرا این تقییده به سفر این در سنت آمد شد اگر چرا؟ اگر فرا... یا فراموش کرد این همچی نزدی کرده فراموش کرد در سفره چرا که تو خونه خود اصلا یالشن. جد... من میدونست در سفر روزن بودیم رو تبقیه این قاعده روزه بود روزه. در حالات و عضر، اون اطلاق عدله به اطلاق فرائد به حال خودش محکوز می‌مونه اون تقییدی که میاد در حالات غیر و عضره. پس اگر جهر اخباد بود و تمام بود تمامه در مورد تمام هم یک توجیه در روایت هم داره وقتا تمام شده بود وقت در مورد افمان در مورد هم با اون توجیه که ما از کردیم آن ما اون حکم قبول نکردیم که اشکال ما اون که اون حکم رو قبول بکنیم اون مشکل رو داره یعنی اون جواب رو داره فقط من یه توضیح ارزو کنم در باب مسافر یه نقطه هم داره، فقط تمام بحث اصولی نیست اون نکته فقهی اینه که اون قصر مسافر از کتاب یا از سنته اینم باید روشن بشه این که مسافر نماز را حتما باید قرص بخونه اینه از کتاب داروندی؟ ویدازراتون فیده از فریسه علیکم جناهان تسلیمون از سلاته از کتاب یا از سنته اون رقاییتی را که برمو صدوق نرم کرده فقط منحسرا صدوق این را خیلی مشکول شده که منعین علم که که سفر در ترشیر عظیمت امام فرمونه آی مبارکه فمن حجم بیتر, بیتر, بیتر این روایت رو فقط صدو برده نه شیخ توسی رو این قسمت روایت نه شیخ کلینی مرحوم اصلا بغدادی ها این بود که قصر و تمام اصلا تمام جزء سنن پیغمبره که نماز دراکتی بود در ماه رمزان سال دوم تجرف پیغمبر هکم دراکت اضافه کردن این دراکت رو برای مقیم اضافه کردن برای مسافر قرار مردن این جزه سنن رو نبی از برنی. خود این حد دست و اطمان خود قسم این جزء حکم اولی این فریضه از اون دورکر فریضه هست این این جزه قصر جزه سننه خب این اول چی صدوق <تصفح> و اده از اخباری های بود که آیه تفسیر شده کل اعتراضش این بود که نه این آیا در به خوف هست اما ساز مخالف نیست. جن نه آیه اصل خود در بعدی که سنت شد. خب بعد شد اون دوره نه از بیاد. ببینید اصلا خود اگر یعنی تا زمان تا سال دوم هجرت اصولاً مسلمان‌ها دورکذین نماز می‌خوندن. این آیه هم قبل از سال جومی هجرتی یعنی. هست میگه بارد بحث فقیش نمیشه اصلا خود این آیه فلیسه علیکم جناحان هم تخصیبونه از سلا سور نه سوره بررستی یعنی. این آیه جزو آیات قبل از تخصیبونه از سلا ولذا این آیه این اینجور ازدهی بنای کردم. هم خود دقیق بکنین این معنام گفتن نماز در اون وقت فلیسه علیکم جناحان هم تخصیبونه از سلا, سلا. سلا بوده در این سلا صبح آیه. لذات کس از نماز این یه لک افزوده شد. اینم برای به. اگه درست نمی‌دونی که چه کنند و و در بله. ببنیدن. نه این آیه که در وقتی سال نگاه کنید شهر نزول در میدونم شما نگاه کنید در اوائل نزول به هجرت مسلمان ها به مکه به مدینه زهدش نگاه بکنید اون وقت این رو و نزای یک رای بوده حالا من نمیخوام بگم این رأی درست یا نادرست اون آیه و زید آیه‌ای میخوام وارد بشم یک رای بوده که هاذا قصر فی قصر این تحصیلان فی قصد مرادشون اینه از ابن عباس هم نرسون ما هم داریم روازه شد ابن قدید هم اعتمادش این بوده که قصدان فی قصد قصد اول یعنی یک رکعت از دو رکعت چون خود آیه تحصیلون از صلاح ولی انسان اینا مثل مرموم سید رو یعنی خود مرموم کلینی هم اصلا در بحث صلاح و مسافرین آیه رو کلن نیابرده لکه مرحوم شیخ طوسی خود آیر نیورده ورده سوال رو اول سوال دوم آورده صدوق هم آیر رو هم سوال رو حالا با. کی در حال سفر نماز تموم کن کلدگی هیچ چیز و ورده واقعا با کلدگیه کلدگی هر دو اسم که روایتش نیورده ورده کلا یعنی این تصور این بوده ما هم از اون هم به عنوان زرب چل ارزم داشته باشیم که میخوایم عنوان مسافر نه زرب فل ولی کسانی که خانه به به قول این ها قدیمی ها یعنی فرسوی مثلا به که دائما در سفر هم ولی اون ضرب قلع ارزم کن اما اینا سفرشون تمام هم. کسی که خانه به دوشه ثابت نیست این نمازش تمام صرف تمام بودن نمازش چون صرف سفر, سفر برایش می کنه چون مبدع نزده هر این از که اصلا سفر برایش سفر کنه آیاتت م به قصد آی که جایی وقت خب شما یک رو روشن این آیه مبارکه رو امسال خود مثلا سید مرتضی کلا در این آی در ذیل باب خوف ورده مثلا سید این آی در تحت خوب بود اصلا این آیه رو در اونجا ذکر کرده انقلات این یک بحث بوده اهل سنت هم همین اشاره داره توی اهل سنت یک قولی هم داریم که آیه در ذات مسافره عین همین استدلالی که در امام شده من این علم که به خاطر رخصت مذهبی عظیمی اونجا هم شده در قول اهل سنت حجر به قبه تمام طلب جنوا علی که فوزیات ما در اونجا تو که اگر واظ قبول بکنیم رو این روایت در کلام این منحصرا قدو برده در کتب اربعه در غیر کتابر و عیاشی هم مرسلا نقل کرده و در کتاب دائم اسلام هم آمده اما در اوساط علمی ما نیامده ای یک تحلیل تاریخ مفصل داری مختصر من حالشم ندارم جاشه اینجا نیست یه شرح مفصلی داره این رباید در دو محصلی که دور از مراکز علمی ما بوده آمده یکی در سمرغن که عیاشی بوده که هم در مست که در هر دو شیعه و حوضای شیعه نبوده در حوزه های متعارفه ما فقط توسط مرهوم شیخ صدوق آمده اونم با عنوان رویه انزراره محمده با عنوان رویه نره با. این هم مشهر به تعملشه شیخ توسیه هم نیورده شیخ کلینی هم قبل صدوق رو نیورده و مخصوصا از عبارت شواهدشون بوده که از کتاب حریزم هست و این خیلی برای ما آوره که واقعا در کتاب هریز باشه و این دو بزرگوار و اصولا این اعتقاد نداشتن کار به این دو بزرگوار نیست اینا اعتقاد نداشتن که آیه در صلات مسافر. حالا این البته آثاری داری که از آثاری که که روز ذیل مطرح میشین؟ ها صلات مسافر جزو سننه. جز سننه. جز فرایضه. روشن شد؟ صلات مسافر ما سنن نبی. این به ماستن اگر به ماستن نشست کن بسی کلام کردیم دروشن میشه لذا در جایی که سندن این که در روایات هم داره که اگر در شما در مسجد حرام و محصول یا در مدینه تمام بخونیم من مخزون علم الله فقر من مخزون علم الله مید من مخزون علم الله اگر خب فرقی و فقری موجید این مخزونی که که یه اشاره به همین نکته است که الان عرض کردن که این جزء سننه و این مفصل دیگه ما در محضا خودشون مصادر چند سال بیش مفصل دیگه دیگه دیگه بر خیلی برسه طولانی به این حدیث اصطلاح سهی زراده یا بغلال از نم کردین اولین کسی هم که رو سهی دونسته مرموم علامت چون علامه از سر وقت دیگه بقیه دنبال ایشان افتادن ها؟ خب دارم چی من میگم که مدل زویی تو بخو، تازه شما تو. زویی میگه کلی نیوورده، صدو خورده، اینم باطیقه روبیه. و صد توسی چیزوسی هم نیوورده. چون علامه گفته رو از صدو صحیحاً دیگه عصاب ما رفض کنیم که پس یه بحث اصلا این سن سعیی یا که به نظر مانده وقیل از صدوق هم عیاشی در سمرغن اونو دور بودن دیگه در کشت و سمرغن نیست و دائم اسلام در نظر یعنی در مراسز حوضبیه ما نه بردن. این حدیث بودن الا صدوق این سری که عرض کردن لذا به ذهن ما با قطع نظر از زوغیات والا عرض بر کتاب سندن شواهد معید این نیست این حدیث ثابت باشه. مخصوصا که مرموم شیخ توسی که افتادش آورده از کتاب حریضه این دیگه مشکل رو بیشتر می چون کتاب حریض خطاً بسیار کتاب معروضی بوده شایع بوده از این که مرموم کلک کتاب حریض در اختیار یا نشون می یک نسخه از کتاب حریض بوده ما به جلیم بحثای این طوری که مثلا این سرزعیف و سرویه چی سوینا بیشتر از این زاویه بحث باز میشه. ایره سراغ سراغ کتاب اصلا نوبت نوبت اون رسه ما مشکل اون اینه که اصلا هنوز برما ثابت نشد این حدیث شو کتاب حرید باشه روشن شد تیمم چون مفهوم صدوق آورده لکن کلینی قدس الله سره که قبل از ایشانه ایشان میگه به اون که حسابنی در اختیارش بوده حساب حدیثی که توسط در اختیار مرحوم ابن ندری بوده که خیلی بعد از شیخه این ببایت در کتاب حدیزم برپرز بوده معلوم شده یک نسخه اش بوده. این که رویه اشاره به همینه. این رویه هم اشاره به همینه. و ممکنه در نسخه اصول در نسخه در نسخه اصول ممکنه بوده بعد که آمدن تسیح و پالایش کنن قبولش نکردن. دیدن با شواهد ترید نمیشه قبولش نکردن حتی تحلیزش کنن. در حال ن میشه این تو صسیع حریز مشکل داره در حال مشکل می و وحق همین این لذا بحث اون بحث قصد و اسم این با شنثابقه نه با فریزه که به این والین کنان هست کردی دیگه ح اونجا بوشند شده. با فریزه مینی با فریزه باشه این صافن خالیتش خ همون با پریزه نیست با سن پس ال الله. خیلی. این مواردی است که خیلی موارد در از